شركت حفاظتی مسافرتی ایمن گولخسیر برگزار میکند طور چهار شب و پنج روز پاریس همراه با خدمات فوق امنیتی پارعی از خدمات ما شامل اسکورت هواپیما با چهار فروند جنگنده صحی 35 از فرودگاه امام تا پاریس ترانسفر با تانک و زرهپوش از فرودگاه تا هتل و بالعکس بازدید دیدن از موزه‌ها و اماکن تاریخی و دیدنی شهر پاریس با اون جلیقه ضد گلوله و بادیگارد مسلح و آموزش کمک‌های اولیه و آموزش فشرده دفاع شخصی در برابر اسلحه سرد و گرم قبل از سفر سلام میبیرم که ساکوچم چمدون بستی کجا به سلامتی؟ راستش داریم به خانواده چند روزی میریم پاریس پاریس؟ چیزی نمیخوای؟ آخه پاریس که خطرناکه مگه نشنیدی چی شده؟ چرا عزیزم ولی ما داریم با ایمن سیر سفر میکنیم وای خوش به حاله جای ما رو هم خالی کنیم با ایمن سیر با خیال آسوده به ترین نقاط جهان سفر کنید ایمن گولاخسیر. Thank you.